ما که از مه بی خودی ناک شدیم و از پایه دون بر سر افلاک شدیم، آخر همه زالایش تنپاک شدیم، از خاک برآمدیم و با خاک شدیم. من در رمزان روزه اگر میخوردم تا زن نبری که با خبر می خوردم. از مهنت روزه روز من چون شب بود، پنداشته بودم که سحر می خوردم. هرگز به طرف شربت آبی نخوریم، تا از کپندو شرابی نخوریم، نانی نزنیم در نمکیش گهی، تا از جگر خیش کبابی نخوریم. هر روز پگاه در خرابات شدم، همراه قلندران تامات شوم چون عالم سر و الخفیات تویی توفیقم ده تا به مناجات شدم.